دوستانا تا به حال تو زندگیتون به جایی رسیدین که قادر نباشین کاری رو که میخواین انجام بدین؟ آیا به جایی رسیدین که بگین من نمیتونم؟ یادگیری این درس خیلی سخته، ولی باید هر روزه با مختلف این درس روحانی رو یاد بگیریم. معلم ما کمک خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چرا باید ما بدونیم که ما نمیتونیم ولی خدا میتونه؟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 زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است معزه سرکوه این آغاز شد در درس اول به زمینه ای که معزه سرکوه در اون داده شده نگاهی انداختیم در درس دوم مروری داشتیم بر محتوای آنچه که به اون معزه سرکوه میگیم با نگاهی به زمینه و خلاصه محتوای این تعلیم بزرگ دیدیم که این در واقع یک معزه نبود اون بیشتر شبیه یک زمان گردهمایی در خلوت روحانی بود. هدف از اون گرده همایی این بود که عیسی مسیح سعی می کرد به برخی از شاگردانش نشون بده که چطور می تونن بخشی از راه حل او بشن. راه حل او برای مشکلات انبوه جمعیتی که در پای کوه بودن، جمعیتی که انواع مشکلات جسمانی، احساسی، اقلانی و روحانی و انواع بیماری ها و ناخوشی ها رو داشتند. در دو جلسه گذشته ملاحظه کردیم که تمام تعالی که به اونها سر سرکوه میگیم در برابر اون انبوه جمعیت و به لحاظی به نفع اون جمعیت داده شد. چون عیسی با برخی از شاگردانش از اون مردم و مشکلاتشون کناره گرفت تا به شاگردانش تعلیم دهد چگونه میتوانند شاگرد او شوند و تعلیم بگیرند و نمایندگانی بشوند برای راه حل او و برای پاسخهای او. همونطور که ایسا بعدها میگه اونها نمک زمین هستند و نور جهانه مانند شهری هستند که بر تپه بنا شده که نمیتوان پنهان کرد و مانند چراغی در چراغ پایه هستند جلسه گذشته در مرور محتوای تعالیم عیسی گفتیم که او با رفتارها شروع کرد هشت رفتار زیبا که این افراد را شاگرد او میساختند. نمک زمین و نور جهان پاسخ او و راه حل او برای مشکلات جهان میساختند بسیاری از محققان این تعالیم رو اینگونه می میبینند رفتارها معزه هستند و بقیه متا پنج، شش و هفت کاربرد آن تعالیم هستند اگر کتاب مقدستون رو باز کنید و به متّا پنج نگاه کنید از همون جمله اول خواهید فهمید که عیسی به شاگردانش تعلیم میده که بخشی از پاسخ او و راه حل او برای مشکلات مردم پای کوه باشد کتاب مقدس میگه او دهان خود را گشود و به شاگردانش تعلیم داد. وقتی عیسی شروع میکنه درباره رفتارها تعلیم میده، طرز فکری رو نشون میده که اونها رو راه حل و جواب او خواهد ساخت. اولین رفتار زیبا این هست، خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهن، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. اولین رفتاری که ایسا میگه باید داشته باشیم تا راه حل او، جواب او نمک زمین و نور جهان بشیم چی هست؟ برخی از محققین اون رو به شکستگان در روح تفسیر اند. برخی از محققین میگن که وقتی عیسی گفت خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان هست منظورش این بود که مردم باید تماما از خودخواهی هایشان بشکنند ایسا میگه من میخوام منو به عنوان پادشاهتون ببینید من میخوام خودتون رو به عنوان متیان در پادشاهی من ببینید و من میخوام تماماً از اراده خودتون بشکنید و اراده منو بپذیرید تا بتونید اراده پادشاهتون رو به عمل بیارید. شما پادشاهی رو خدمت خواهید کرد که متیش هستید. برخی ها اون رو اینطور تفسیر کردن. محققین دیگر کتاب مقدس میگن فقیری در روح یعنی فروتنی. فروتنی چیز فراری هست. گفته میشه که دقیقا همون زمانی که فکر میکنید فروتن هستید، احتمالا فروتن نیستید. کلیسایی بود که به شبانش مدال فروتنی داد، اما مشایخ کلیسا بعدها مجبور شدن مدال او رو پس بگیرن. پس بگیرند، چون او هر روز این مدال را به سینه میزد. امکان داره که این فقر روحی مربوط به فروتنی باشه، چون مربوط به چیزی هست که شما درباره خودتون فکر میکنید. رفتارتون با خودتون چگونه هست و رفتارتون با خداوند و پادشاهتون چگونه هست؟ اینجا بر هر دوی اینها تمرکز شده. داستانهای زیادی در کتاب مقدس از مردان خدا هست. مثلا درباره پتروس رسول هست. پتروس مجبور بود در طول زندگیش سه تا درس رو یاد بگیره. اول باید یاد می گرفت که هیچ کس نیست، بعد باید یاد می گرفت که کسی هست و بعد باید یاد می گرفت که خدا می تونه در زندگی کسی که می دونه هیچ کس نیست چیکار بکنه. از وقتی که پتروس ایسا را ملاقات کرد تا وقتی که سه بار عیسی رو انکار کرد و به تاریکی رفت و در آنجا به تلخی گریست او داشت اولین درس رو یاد می گرفت که او هیچ کس نیست وقتی خداوند بعد از قیام بر پتروس ظاهر شد گفته شده که این تعیید او هست اثبات او و اطمینان او هست چون او یاد گرفته بود که هیچ کس نیست حالا او کسی بود که خدا میتونست ازش استفاده کنه. در روز پنتیکاس کلیسا و کل دنیا درس سوم را از طریق زندگی پتروس فهمیدن. تجربه پتروس در روز پنتیکاس چه چیزی رو به ما تعلیم میده؟ اون به ما تعلیم میده که خدا میتونه در زندگی کسی که یاد گرفته کسی نیست چیکار بکنه؟ چرا روح القدس به وسیله پتروس بر ایمانداران اومد؟ چرا توسط یوحنا نیومد؟ کسی که خداوند رو بیشتر دوست داشت. چرا از طریق یعقوب نیومد؟ چرا از طریق توما نیومد؟ چرا از طریق نتنائیل نیومد که بسیار مقدس بود؟ چرا پتروس؟ به اعتقاد من روح القدس در روز پندیکاست به وسیله پتروس نازل شد چون پتروس اولین رفتار زیبا رو یاد گرفته بود که ما رو قابل استفاده می کنه. پتروس یاد گرفته بود که در روح فقیر باشه. پتروس در روح فقیر بود. او وقتی به تاریکی پناه برد و به تلخی گریست در روح فقیر شد. چون او پشیمان بود از اینکه سه بار خداوند را انکار کرده بود و فهمیده بود که هیچ کس نیست. در کتاب خروج در عهد قدیم مثال دیگری از فقر روحی هست. من داستان موسا رو واقعا دوست دارم. دعوت و مأموریت موسا رو که در بابهای ابتدایی کتاب خروج گزارش شده که 120 سال روی زمین زندگی کرد. یکی از شبانان بزرگ امریکایی به نام دی ال مودی می گفت که 120 سال زندگی موسا به سه دوره چهل ساله تقسیم شده بود. در هر یک از این چهل سالی که موسا بر روی زمین زندگی کرد، او یک درس گرفت. در اولین چهل سال از زندگیش موسا این درس رو یاد گرفت. موسا تو هیچ کس نیستی. چهل سال طول کشید تا موسا این درس رو یاد گرفت. در دومین چهل سال از زندگیش موسا این درس رو یاد گرفت. موسا تو کسی هستی؟ و بعد در سومین چهل سال زندگیش وقتی که او عامل انسانی آن رهایی بزرگ قوم خدا از بردگی و اصارت مصریان بود او یاد گرفت که خدا میتونه در زندگی کسی که یاد گرفته هیچکس نیست چی کار بکنه. روش دیگر مرور زندگی موسی میتونه این باشه که بگیم در اولین چهل سال از زندگیش او تعلیم واقعی زندگیش رو یاد گرفت. در پایان اولین چهل سال یا در خلال اولین چهل سال موسا فهمید که یکی از اون یهودی ها هست. او به خاطر شرایط نامتعارف تولدش یک شاهزاده مصری بود. او توسط یک پرنسس مصری که او را در سبدی از رود نیل گرفته بود به فرزندی پذیرفته شد. در اون ایام فرعون قانونی وضع کرده بود که هیچیک از نوزادان پسر یهودی اجازه نداشتند. به حیات خود ادامه بدن و به همین دلیل مادرش او را در سبدی به رود نیل سپرد البته این از تمهیدات خدا بود که شاهزاده‌های مصری با کنیزانشان در رود نیل حمام می‌کردند یکی از اونها این سبد کوچک رو از کنار رودخانه گرفت و وقتی از آب بیرون آوردند صدای گریه نوزادی رو شنیدند و این قلب پرنسس مصری رو تکان داد پس او موسا رو از سبد در آورد و در همونجا بود که نام موسا رو به او دادن که به معنی بیرون آورده شده بود. او بچه را گرفت و او را به فرزندی پذیرفت. و این نشون میده که این مرد موسا در قصر فرعون بزرگ شد. خواهر او که این سبد کوچک رو به آب رها کرده بود، دید که چه اتفاقی افتاده و به پرنسس مصری گفت که من میتونم دایه‌ی یهودی برای این بچه پیدا کنم. پرنسس با خودش فکر کرد که این میتونه فکر خوبی باشه. پس خواهر او مادرش رو برای دایگی او آورد. یکی از محققان پروتستان گفته خدا ترتیب این رو داد چون میدونست که یک گرم مادر ارزشمندتر از یک کیلو گرم فرعون بود. و خدا میخواست که مادرش او رو شیر بده. شاید مادرش به او گفته بود که او یک یهودی هست. به هر حال در پایان اولین چهل سال زندگیش او فهمید که یک یهودی هست و به عنوان یک برده متولد شده. او درس دوم بزرگ زندگیش رو در طی چهل سال دوم زندگیش یاد گرفت. کتاب مقدس میگه که او بیرون رفت و بارهایی رو که برادران یهودی او تحمل میکردند دید. و حالا می دونست که اونها برادران او هستند. وقتی او برادرانش رو دید و بارهای اونها رو و مشکلات اونها رو دید خواست که کاری بکنه. او یک مصری رو کشت و از شواهد چنین پیداست که یک مصری والا مقام رو کشت. اینجا بود که خداوند نزد موسی میاد و میگه موسا اینطوری نمیشه آزاد شد. آیا میخوای کاری برای مردم بکنی؟ آیا میخوای اونها رو از بردگی آزاد کنی؟ خب تو نمیتونی این کار رو با کشتن مصری ها انجام بدی. حالا تو یک جانی تحت تعقیب مردم خواهی بود. همه خواهند فهمید که تو یک قاتل هستی. نباید با کشتن کسی به اسرائیلی ها کمک کنی اینجوری کاری از پیش نخواهی برد بیا تو رو به یک دانشکده چهل ساله ببرم تا در این مورد فکر بکنی خب موسا به اماق بیابون فرار میکنه اونجا موسا دومین دوره تعلیماتی زندگیش رو شروع میکنه میتونید به این دوره از زندگی او دوره لیسانس الهیاتی او بگی او چهل سال در این دانشکده ای که خدا در اعماق بیابان براش آماده کرده بود سپری کرد. در پایان این دوره چهل ساله در بیابان بود که موسا از دانشکده خدا به عنوان سخنگوی او فارغو تحصیل شد. موسا بوته ای رو دید که می سوخت ولی به وسیله آتش از بین نمی رفت. بوته های آکاسیا هر از گاهی به خاطر گرمای بیابون خود به خود آتش می گرفتن. اما در عرض پنج ثانیه می و از بین می رفتند. موسا بوته ای را دید که آتش گرفته اما از بین نمی ره کتاب مقدس میگه او تصمیم گرفت به آن طرف برگردد آیه سه از باب سه خروج میگه گه و موسا گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که چرا بوده سوخته نمی شود چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدانسو می شود خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت ای موسا ای موسا این نمادین هست. موسا چهل سال بود که بدان سو مایل شده بود و خدا دید که او به آن طرف برگشته و برای رهایی بنی اسرائیل از رنجهاشون هاشون دعا میکنه. حالا وقتی خدا در بوته مشتعل به موسا ظاهر میشه این مثل فارغ و تحصیلی موسا از اون دانشکده هست. خدا با او صحبت میکنه. چیزی که خدا از طریق بوته مشتعل با موسا صحبت میکنه به ما نشون میده که معنی فقیر بودن در روح چیه. چیزی که خدا به موسا از طریق بوته مشتعل گفت به طور خلاصه چیزی مثل این بود. موسا تو مشکل رو دیده ای و این قابل تحسینه. بسیاری از مردم هرگز حتی مشکلات رو نمیبینن. تو میخوای کاری در این مورد بکنی و این نیز قابل تحسینه. بسیاری از مردم اصلاً اهمیت نمیدن تو دلسوزی داری این بسیار زیباست و میخوای کاری بکنی که به این مردم کمک کنی این العاده است اما موسا مسئله مهم این واقعیت نیست که تو مشکل رو میبینی این نیست که تو اهمیت میدی این واقعیت نیست که تو میخوای چیکار بکنی مسئله مهم اینه من یقیناً رنج قومم رو در مصر دیدم من فریاد اونها رو شنیدم و با دلسوزی و علاقه ندامت اونها رو میدونم و الان اومدم که اونها رو نجات بدم اومدم که کاری بکنم این چیزیه که اهمیت داره در این مرحله شاید موسا گفته باشه بسیار خوب پس من نزد گوسفندانم برمیگردم خوشحالم که همه چیز تحت کنترل تو هست اما اینجاست که خدا میگه و الان اینک استقاسه بنی اسرائیل نزد من رسیده است و ظلمی را که مصریان بر ایشان می‌کنند دیدم پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری وقتی خدا از میان بوته مشتعل با موسی صحبت می کرد چیزی که به او می گفت این بود موسا تو نجات دهنده این مردم نیستی تو نمیتونی کسی رو نجات بدی تو چهل سال شکست خورده پشت سرداری و این ثابت میکنه که تو نمیتونی. چیزی که تو باید یاد بگیری این هست. من میتوانم. من این رو به عنوان یک رمز روحانی میدونم. من نمیتوانم اما اون میتواند یک رمز روحانیه. نمیدونم تا حالا این رمز روحانی رو یاد گرفتید یا نه. مخصوصا اگر یک ایماندار هستید و میخواهید بخشی از راه حل و پاسخ خداوندمون باشید باید این رمز رو یاد بگیرید. اگر میخواهید بخشی از خدمتی باشید که عیسی مسیح میخواد در این جهان داشته باشه اگر میخواهید دیگران را به سوی مسیح هدایت کنید اگر میخواهید مردم را به سوی ایمان هدایت کنید اگر میخواهید ببینید دیگران از نو متولد میشن باید بدونید که شما نمیتونید این کار را بکنید فقط خدا میتونه معجزه ها این هست. آیا این خبر خوش رو میدونی؟ این خبر مهیج رو که او میتونه توسط شما و توسط من این کار رو بکنه. او میتونه این کار رو توسط افرادی مثل من و شما بکنه به شرطی که ما تفاوت بین سهم خودمون و سهم او رو بدونیم. این معنی فقیر بودن در روح است. سالها پیش وقتی من خدمتم رو شروع کردم خیلی خجالتی بودم. خانم پیری در کلیسا از شبان پرسیده بود که آیا من عقب افتاده هستم؟ چون اونقدر خجالتی بودم که اگر کسی اسم منو میپرسید به زمین نگاه میکردم و صورتم سرخ میشد. یکی از اولین چیزهایی که در اوایل خدمتم از من خواستند انجام بدم ملاقات با یک زوج بود. من و همسرم طبق برنامه باید با این زوج شام میخوردیم. زن توسط کسی که او رو به ایمان هدایت کرده بود به مسیح ایمان آورده بود. اما شوهرش هنوز ایماندار نبود. شوهر او افسر نیروی دریایی بود و از دانشگاهی بزرگ فارغ و تحصیل شده بود ما قرار بود با اونها شام بخوریم و من او رو به سوی مسیح هدایت بکنم هدف از این شام همین بود وقتی ما وارد خونه اونها شدیم زن من و زن او توی آشپزخونه مشغول آماده کردن شام شدند و ما دو نفر توی اتاق نشیمن صحبت می کردیم در اون روزها به خاطر خجالت هم احساس میکردم عقده حقارت دارم اما بعدها که روانشناسی خوندم فهمیدم که هیچ ربطی به عقده حقارت نداشته. من کاملا آزاد بودم. اما به خاطر این خودکمبینی و خجالتی بودن معمولا سردردهای شدید میگرنی میگرفتم. وقتی داشتیم صحبت میکردیم سردرد میگرنی من شروع شد. شروع کردم به عرق ریختن و دلدرد گرفتم. در وسط صحبتمون او از من پرسید که آیا حال من خوب هست یا نه؟ و من جواب دادم. چیزی نمونده که جونم در بیا او گفت اینجا روی کاناپه دراز بکش و من حوله خونکی برات خواهم آورد او رفت و حوله خونکی برای من آورد و روی سر من گذاشت و مثلا من اونجا بودم که او رو به مسیح هدایت کنم اونقدر حالم بد بود که مجبور شدیم حتی شام نخورده اونجا رو ترک کنیم روز بعد او با چند نفر از افسران نیروی دریایی که ایماندار بودند شام میخورد اونجا او به اون افسران گفته بود که مردی به خونش اومده بود که می‌خواسته چیزی به او بگه اما اونقدر کمرو و خجالتی بوده که توی اتاق نشیمن تقریبا از حال رفته او از اون افسران مسیحی پرسیده بود آیا می‌دونید او چی می‌خواسته به من بگه و یکی از اونها گفته بود بله من می‌دونم او چی می‌خواسته بگه به هر حال اونها با او صحبت کرده بودند و در قضاخوری افسران او رو به مسیح هدایت کرده بودند همون مرد الان جزء مشایخ یک کلیسا هست و ایماندار بسیار خوبی هست. او به ایمان هدایت شد اما نه به وسیله من. چون من بسیار خجالتی بودم و خودم را دست کم می گرفتم. من فکر می کنم من هم از این لحاظ درست مثل موسی بودم. او در دانشگده بسیار بزرگی تحصیل کرده بود. نمیدونم آیا شما هم وقتی به این فکر می کنید که بخشی از راه حل و پاسخ عیسی به مردم باشید مردمی که به عیسی نیاز دارند چنین احساسی دارید چیزی که لازم من یاد بگیرم تا به عنوان یک انسان در راه رفتن با عیسی دست کم بتونم به عنوان یک خادم انجام وظیفه بکنم اینه که در روح فقیر باشم این اولین رفتاری هست که عیسی گفت باید داشته باشیم اگر واقعا میخواهیم نمک زمین و نور جهان باشیم چیزی که مهم هست و ما باید یاد بگیریم اینه که من نمیتونم اما او میتونه. من نمیتونم کسی رو به ایمان هدایت کنم. من نمیتونم در قلب کسی ایمان بکارم. من نمیتونم سبب تولد تازه کسی بشم. من نمیتونم کسی رو مخلوق تازهی بکنم که چیزهای کهنه بگذرن و همه چیز تازه بشه. قطعا من نمیتونم این کار رو در زندگی کسی بکنم. و میدونید چیه؟ شما هم نمیتونید. اگر شما فرد موفقی هستید که من نبودم و خودم رو دست کم می گرفتم، اما اگر شما شخص موفقی باشید، یادگیری این درس برای شما سختتر از کسانی مثل من هست. چون من فرد موفقی نبودم، باید این رو یاد می گرفتم. تا وقتی این رو نفهمیدم، نتونستم کار کنم. اما میدونید چیه، همه ما باید این رو یاد بگیریم. بنابه گفته مطا هفت، آخرین باب از مععزه سر دلیلی که چرا عددی در مقابل خداوند میستند و میگویند خداوندا خداوند و, خداوند و به نام تو کارهای خار العاده کرده ایم و خداوند میگوید ای بدکاران هرگز شما را شناخته دلیلش این هست که کسانی که موفقن میتونند کارهای خیلی بزرگی بکنن. اما اینها چیزهایی نیستند که خدا میخواد. اینها کارهای خارغعاده نیستند، اینها کارهای خارق العاده خداوند توسط اونها به عنوان یک وسیله در زندگی کسی نیستند. پس اولین رفتاری که عیسی میگه باید یاد بگیریم تا بتونیم راه حل و پاسخ او باشیم اینه. خوشا حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. به عبارت دیگه خوشا حال افرادی مثل پتروس و موسی که یاد گرفتند هیچ کس نیستند و بعد به خاطر کاری که خدا در اونها انجام داده بود یاد گرفتند که کسی هستند میگن که سومین درسی که موسی یاد گرفت و مربوط به نماینده خدا شدن برای رهایی قوم از دست فرعون بود این بود که این چیزی نیست که من بتونم بلکه چیزی که خدا میتونه انجام بده موسا عامل انسانی آن رهایی عظیم شد اما چرا او تبدیل به آن عامل انسانی و وسیله‌ای برای آن رهایی عظیم شد؟ به خاطر اینکه او به عنوان یک برده متولد شده بود و تجربه دانشگاه چهل ساله در بیابان را داشت و چیزی که در اونجا یاد گرفت این بود این کاری نیست که من بتونم انجام بدم. این کاریه که به عهده خداست و کاریه که خدا میتونه انجام بده. این معنی فقر در روح است. این معنی فقیر بودن روحانی هست ببینید این اولین رفتار از هشت رفتار زیباست که ما باید یاد بگیریم تا بتونیم بخشی از پاسخ و بخشی از راه حل ایسا باشیم نمیدونم شما تا حالا این رو یاد گرفتید ببینید وقتی ما بالای کوپ و با ایسا جمع میشیم و به این اولین گرد همایی مسیحیان میپیوندیم او سعی میکنه ما را به عنوان شاگردانش به کار بگیره و سعی میکنه ما رو تربیت کنه تا بتونیم نمک روی زمین و نور این جهان باشیم عیسی میگه این اولین چیزیه که من و شما اگر میخواهیم جزی از راه حل او و پاسخ او باشیم باید یاد بگیریم شما نمیتونید اما من میتونم آیا این رو یاد گرفتید؟ آیا حاضرید امروز این رو به او بگید تا ملاحظه کنید او از شما میخواد براش چیکار کنید؟ پس امروز به او بگید پدر آسمانی من نمیتونم اما ایمان دارم تو میتونی ایمان دارم تو میتونی هر کاری که بخوای توسط من و در من انجام بدی عزیزان معلم ما به تعلیم مویزه سرکوه ادامه خواهد داد و به ما درس خواهد داد و ما رو تشبیق خواهد کرد تا شاگرده تثیر گذاری باشیم اما اولین قدم داشتن رفتاری درسته فقیر بودن در روح درک اینکه ما نمیتونیم اما خدا میتونه. با این رفتار ما از شما میخواییم که ترتیبی بدید که جلسه آینده هم در ادامه مطالعه معزه سر کوه با ما هم راه باشید. امیدواریم، امیدی که ما در خدا پیدا میکنیم شما رو تشویق کنه تا به پیروی از عیسی مسیح ادامه بدیم.